کتاب دختر بلفی پسر آتشی و چهل و شش افسانه دیگر افثانه های شیرین دنیا نویسنده اندرو لنگ مترجم سارا قدیانی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده این داستان کشتی پرنده یکی بود یکی نبود زن و شوهر پیری سه پسر داشتند دو پسر بزرگتر خیلی باهوش بودن اما کوچیکترین اونها خیلی کودن بود. پسرهای باهوش خیلی مادرشون رو دوست داشتند، براش لباسهای زیبا می و به او محبت میکردند، اما پسر کوچیکتر همیشه باعث ناراحتی او میشد و مادر حوصلهش سر میرفت رفت. یه روز اعلام شد که پادشاه قول داده دخترش رو به همسری کسی در بیاره که بتونه کشتی پرنده بسازه. دو برادر بزرگتر فوری تصمیم گرفتن شانس خودشون رو امتحان کنن و از پدر و مادرشون خواستن براشون دعا کنن. مادر لباسای اونها رو مرتب کرد و براشون مقداری آب و غذا در کیسه گذاشت تا در راه از اون استفاده کنن. وقتی اونها رفتن پسر کوچیک سیمپلتون هم شروع کرد به داد و فریاد تا مادرش به او هم آب و غذا بده و راهیش کنه. مادر گفت آخه از احمقی مثل تو چه کاری برمیاد؟ تازه ممکنه گرگا تک پارت کنن. اما جوون نادون حرفشو تکرار کرد. منم میخوام برم. میخوام برم. میخوام برم. مادر که دید حریف اون نمیشه یه تکه نون و کمی آب بهشتد و دیگه هیچ اعتناعی بهش نکرد. به این ترتیب سیمپلتون به راه افتاد. هنوز مسیر زیادی رو نکرده بود که با یه کتوله روبرو شد. اونها به هم سلام کردند. کوتوله ازو پرسید که کجا میره پسر جواب داد به دربار پادشاه میرم او قول داده دخترشو به کسی بده که بتونه یک کشتی پرنده بسازه تو کشتی پرنده ساختی من نه پس چرا میری سیمپلتون جواب داد نمیتونم بگم کوتوله گفت خب پس بیا کمی کنار من بشین تا با هم استراحت کنیم و یه چیزی بخوریم کمی از غذایی که تو کیف داری به من بده. سیم پنل بیچاره خجالت میکشید از بهش نشون بده. اما فکر کرد به هر حال از هیچی بهتره و در کیفش کیفشو باز کرد. اما نتونست چیزی رو که میدید باور کنه. چون به جای نون خشک دو قرص نون تازه و مقدار گوشت داخل کیفش بود. او غذا رو با کتوله تقسیم کرد. وقتی سیر شدن کتوله گفت حالا به جنگل برو. جلوی اولین درخت بیست سه بار تازی درخت رو با تبرت قطع کن بعد روی زمین سجده کن و طور بمون تا بلندت کنند. اون وقت کشتی کنارت خواهی دید. داخلش بنشین و تا قصر پادشاه پرواز کن. اگه در راه کسی رو دیدی اونو هم با خودت ببر. سیمپلتون از کتولش تشکر کرد. باش خداوزی کرد و برایش ادامه داد. وقتی به اولین درخت رسید جلوی اون استاد و کارایی را که کتوله گفته بود انجام داد. بعد زانو زد و صورتش رو روی زمین گذاشت و خوابش برد. پس از مدتی با شنیدن صدای بیدار شد. از جا برید و چشماش و مالید و کشتی حاضر و آماده ای رو کنارش دید و فوری سوارش شد. کشتی بالا و بالاتر رفت و یه لحظه بعد تو آسمون پرواز کرد. سیمپلتون از اون بالا پایین و تماشا می که چشمش به مردی افتاد که زانو زد و گوشش رو به زمین مرتوب چسمونده بود. پسر فریاد زد سلام داری چیکار کار میکنی؟ مرد جواب داد به اتفاقاتی که تو دنیا میفته گوش میدم کشتی به راهش ادامه داد و ناگهان چشم سیمپلتون به مردی افتاد که با تا فنگش دور دست را نشونه گرفته بود پسر فریاد زد سلام کجا را نشونه گرفتی؟ تا جایی که چشم کار میکنه هیچ پرندهی تو آسمون نیست مرد جواب داد شلیک کردن به هدف‌های نزدیک که فایده‌ای نداره. من عادت دارم پرنده‌ها و حیواناتی رو که 100 کیلومتر دورتر هستند و هدف بگیرم. فقط اینطوری از شکار کردن لذت میبرم سیمپلتون جواب داد: تو هم بیا سوار کشتی شو. مرد با خوشحالی قبول کرد و کنار اونها نشست. کشتی کنن جلو جلوتر رفت تا در جاده زیر پایشون. سیمپلتون مردی را دید که بر پشتش سبد بزرگی گذاشته است. که داخلش پر از نونه او فریاد زنان پرسید سلام کجا میری؟ برای صبحونه نان میبرم برای صبحانه؟ پس چرا سبدت رو اینقدر پر کردی؟ مرد جواب داد اینکه چیزی نیست من همه این رو را یه لقمه میکنم پس بیا و با ما توی کشتی بشین مرد با خوشحالی وارد اون جمع شد و کشتی دوباره پپرباز در اومد و راهش ادامه داد تا اینکه که چشم سیمپلتون به مردی افتاد. که کنار دریاچه بزرگی قدم میزد و به نظر می اومد دنبال چیزی می گرده. پسر فریاد زد سلام. دنبال چی میگردی؟ مرد جواب داد تشنم و دنبال آب می گردم. این همه آب توی دریاچه هست و کمی از اون بنوش. مرد جواب داد فکر می کنی کافیه؟ من همه این آب رو با یه جرعه تموم میکنم. خب بیا کنار ما توی کشتی بشید. مرد به جمع انها اضافه شد و کشتی جلوتر رفت تا اینکه سیمپلتون مردی را دید که یه دسته چوب را بغل کرده بود و از جنگل میگذشت پریاد زد سلام این چوبا به چه دردت میخوره مرد جواب داد اینها چوبای معمولی نیستم سیمپلتون پرسید پس چه جور چوبایی هستن؟ مرد گفت اگه اونها را به زمین بندازی تبدیل به یک گروه سرباز میشن. یا سوار کشتی ما بشو او هم به گروه آنها اضافه شد و کشتی. جلوتر و جلوتر رفت تا اینکه این بار چشم سیم پلتون به مردی افتاد که حسیر رو, رو روی دوشش حمل میکرد. سلام، اون حصیر رو کجا می بری؟ مرد گفت به روسا: یعنی توی روسا هسیر پیدا نمیشه؟ چرا؟ اما این حسیر با بقیه فرق داره اگه حتی وسط تابستون رو زمین پهن کنی هوا فوری سرد میشه و برف می برو و مردم یخ میزنن. سیمپلتون ازم دعوت کرد سوار کشتی بشه. بالاخره کشتی به همراه مسافرهای عجیبش به دربار پادشاه رسید. پادشاه مشغول خوردن نهار بود اما فوری یکی از درباریانش رو فرستاد تا ببینه اون پرنده بزرگ و عجیب که تو هوا پرواز میکنه چیه. مرد درباری بیرون رو نگاه کرد و کشتی رو دید و فوری نزد پادشاه برگشت و گفت چیزی که در هواست و داره پرواز میکنه یک کشتی پرنده که ایده روزی‌دایی سوارش هستند. بعد پادشاه بی یاد قولش افتاد اما با خودش گفت هر اجازه نخواهد داد دخترش با یه روستایی فقیر ازدواج کنه به همین دلیل فکر کرد و فکر کرد و بعد با خودش گفت باید از او بخوام کارهای غیر ممکن رو انجام بده این تنها راه نجات پیدا کردن از دست اون هست بعد تصمیم گرفت یکی از درباریان رو سراغ سیمپلتون بفرسته تا بهش دستور بده به اون سوی دنیا بره و قبل از تمام شدن غذای پادشاه براش آب شفابخش بیاره اما لحظه ای که پادشاه داشت برای مرد درباری توضیح میداد، باید چه کار کنه؟ یکی از افراد کشتی که گوشای تیزی داشت، حرفای پادشاه را شنید و برای سیمپل بیچاره تعریف کرد. پسر گفت: آه، حالا من باید چه کار کنم؟ پیدا کردن آب شفابخش یک سال شاید هم یک عمر طول بکشه. مرد تندرو گفت: اصلا نترس، من دستور پادشاه را اجرا میکنم. همون موقع مرد درباره رسید و دستور پادشاه را اعلام کرد سیمبلتون گفت به اعلیحضرت بگویید دستور ایشان اطاعت می شود. بعد مرد دونده پاشا از پشت گوشش باز کرد و به افتاد و در کمتر از یک دقیقه آخر دنیا رسید و از چاه آب شفا بخش برداشت بعد با خودش گفت وای چقدر خسته شدم بهتره کمی استراحت کنم هنوز تا تمام شدن غذای پادشاه وقت دارم او روی چمنها دراز کشیدم چون آفتاب خیلی تند بود چشماشو بست و چند لحظه بعد به خواب عمیقی رفت همون موقع همه افراد کشتی با بی سبری منتظر او بودند. ناهار نهار داشت تمام میشد و دوستشون هنوز برنگشته بود به همین دلیل مردی که گوشای تیز داشت گوشش روی زمین گذاشت و به صداها گوش کرد و ناگهان گفت به این میگن یه پسر بیخیال رو زمین دراز کشیده و صدای خورخورش به هوا بلند شده با شنیدن این حرف شکاچی تفنگش رو برداشت و هدف گرفت و به اون طرف دنیا شلیک کرد تا دوست تنبلش رو بیدار کنه. یه لحظه بعد سر و کله دونده پیدا شد، وارد کشتی شد و آب شفافش رو به سیمپلتون داد. به این ترتیب هنگامی که پادشاه هنوز از پشت میز نهار بلند نشده بود، به او خبر دادند که دستورش اجرا شده. حالا باید چیکار میکرد؟ پادشاه تصمیم گرفت وظیفه خیلی سختتری بهش بده. به همین دلیل حسی رو به سراغ سیمپلتون فرستاد تا بهش بگی که او و هاش باید فوری دوازده گاو و دوازده تن نون رو بخورند. یک بار دیگه وقتی پادشاه با یکی از درباری ها حرف میزد، مردی که گوچای تیز داشت همه چیز شنید و به سیمپلتون خبر داد. او آهی کشید و گفت دیگه هیچ کاری از دستم برنمیاد، نمیاد چون خوردن دوازده گاو و دوازده تن نون یک سال شاید هم یک عمر طول میکشه. مرد شکمون گفت اصلا نترس من خیلی گرسنم و این غذاها رو می‌خورم و به زور منو سیر میکنه. به این ترتیب وقتی قاصد پیغام پادشاه رو آورد به او گفتن نزد پادشاه برگرد و بگه دستورش اطاعت میشه. بعد دوازده گاو سرخ شده و 12 تن نون به کنار کشتی آورده شد و مرد شکمو در مدت کوتاهی همه اونها رو خورد بعد گفت من به این میگم تهبندی کمی بیشتر بود. دفعه بعد پادشا دستور داد سیمپلتون و دوستاش فوری چهل بچه نوشیدنی را که داخل هر کدوم چهل باتری بود بخورند وقتی مرد تیز گوش این دستور رو شنید به سیمپلتون اطلاع داد، او با ناامیدی گفت: ای وای دیگه کاری از دستمون بر نمیاد نوشیدنی این همه نوشیدنی یه سال طول میکشه. شاید هم یه عمر." مردی که همیشه تشنه بود گفت: "اصلا نترس. من همه آنها رو در یه جوره مینوشم." حالا می‌بینی همین طور هم شد وقتی چهل بشکه نوشید یعنی را که توی هر کدوم چهل بطری بود به کنار کشتی آوردن محتویات همه اونها در مدت کوتاهی واردش شکم مرد تشنه شد وقتی دیگه چیزی باقی نموند او گفت ولی من هنوز تشنم کاش چند بشکه دیگه هم بود پادشاه باز به فکر رو رفت و این بار به سیمپلتون پیغام داد که او باید در حمام سلطنتی قصر خودشو بشوره بعد جشن نامزدی برگزار خواهد شد اما حمام قصر از آهن ساخته شده بود و پادشا دستور داد اونجا رو به قدر داغ کنن که سیمپلتون در اون خفه بشه وقتی جوون رو کودن وارد حمام شد دید دیوارهای آهنی از شدت حرارت قرمز شدند اما خوشبختانه دوستش با حسیر جادویش پشت سر او وارد شد و به محض اینکه در را پشت سرشون بستن او حسیرش را کرد و ناقهان دیوارهای داغ خنک شدند و هوا به قدری سرد شد که سیمپلتون جرعت نمیکرد خودشو بشوره و همه آبهای حمام یخ زدند. به همین دلیل سیمپلتون روی بخوری حمام دراز کشید و حوله ها رو دورش پیچید و شب رو همونجا خوابید صبح روز بعد وقتی درباریان در باز کردن دیدند که او صحی و سالم و با خوشحالی آواز میخونه. این بار وقتی جریان رو برای پادشا تعریف کردن خیلی عصبانی شد و نمیدونست چطور میتونه از دست این داماد به درد راحت بشه که ناگهان فکری به خاطرش رسید و یکی از اطرافیان رو خودش رو احضار کرد و بهش گفت به اون مزاحم بگین باید همین الان برای من یه ارتش درست کنه خیلی فوری این دستور رو به او اطلاع بدین. بعد با خودش گفت این بار دیگه حتما اونو شکست میدم مثل همیشه تیزگوش دستور پادشاه رو شنید و به گوش سیمپلتون رسوند او نالهکنان گفت ای وای این بار دیگه کارم تمومه یکی از دوستاش یعنی همون مردی که یه دسته چوب به خودش هم میکرد گفت اصلا اینطور نیست مثل اینکه منو کاملا فراموش کرده بودی همون موقع مرد درباری که تمام راه را دویده بود نفس زنان به کنار کشتی رسید و دستور پادشاه را اعلام کرد سیمپلتون جواب داد بسیار خوب من یک ارتش برای پادشاه جمع خواهم کرد اما اگه باز هم منو به عنوان دامادش قبول نکنه با اون میجنگم و شهزاد خانم رو به زور خواهم برد. شب بود که سیمپلتون و دوستش چوب ها رو برداشتند و به دشت رفتن رفتند. مرد چوب ها رو همه جا پخش کرد و یه لحظه بعد ارتش قوی و بزرگی با سواره و پیاده نظام های فراون ظاهر شد. صدای شیپ رو تبل جنگ جوها دشت را پر کرده بود و از همه جا شیهه ها به گوش میرسید و سربازها با نیزه های آماده منتظر دستور بودند صبح روز بعد وقتی پادشاه بیدار شده از بیرون قصر مثل میدون جنگ صدای طبر شیپور به گوش میرسید اسبها سمبر زمین می کوبیدند و سربازها فریاد میکشیدند وقتی پادشاه پشت پنجره رفت نیزه های زیادی را دید که زیر نور خورشید میدرخشیدند و سپرها و سلاحها برق میزدند حاکم مقرور با خودش گفت من در مقابل قدرت این مرد خیلی ضعیف هستم. به همین دلیل برای او لباس و جواهرات زیادی فرستاد و از او خواست به قصر بیاد و با دخترش ازدواج کنه. به این ترتیب داماد او لباس های سلطنتی را پوشید و به قدری با وها را جذاب شد که اصلا نمیشد فهمید این همان سیمپلتون فقیر است. و شاهزاده خانوم به اینکه چشمش به او افتاد بهش علاقه من شد هیچ کس تا اون موقع جشنی به آن باشکوهی ندیده بود. در این جشن عروسی به قدر غذا و نوشیدنی فراون بود که حتی مرد شکمو و مرد همیشه تشنه هم سیر شدند. کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی دی نشانی وبلاگ ما l o g f a c کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی